مثل سی بله همکنون در خدمت کارشهاش امنیتی انتظواتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جواق جااب سرهنگ هست انجام به مردم سلام عرض ما در خدمت شما هستم خب تا اینجانز از این غایقای آمریکایی که گرفته بودین چه خبر اونایی که ما نگرفته بودیم برادرانمون در سپاه زحمتش او کشیده بودن خب همین دیگه حالا ما به سپاه که دست سینالریم ب... شما رفیق فقط جان بگو ببینیم خبر تخصصی در این زمینه چی داری برامون سن گفت البته ببینید بله دوستانی ما در سپاه یه سری اطلاعات به بنده دادن که خب البته طبقه بندی شده هستن اینها و سر همینه لوس نکن خودت تو دیوار طبقه ببنید. بندی کلی چنده بگی دیگه ببینید میبینید بنده اسراری نظام ایران نمیتونم بگم به شما چه آقا جون یه کوچیدیش بگو یکی یه... به خاطر شنوندا نیمی... اینم بمیره تونی بچت تونی ب... مادرت بگی دیگه باشه شما برای اقا جلوی اون نیاین چی چین کارای سباگ بله خب سردار سلامی جانش اینی فرمانده کالی سپا از دوستانی دارانی مهده کودکی بندستا ایه. اطلاعاتی را ببندن در این بار دادنیشون کچه ایمارو سره ماند... این و بگو دیگه با بگو, بگو بگو اجازه بفرم ارز کنم که ایشون میگفت وقتی این های امریکای واردی مم. آب ایران شدن شناورهای کوچیک ایرانی آه. با تعدادی نیروهای های کمتر اونا رو محاصره کر بعدم با شجاعتی خاصی اونا رو به اسارت در آوردن. رنگ عکس العمل این نیروهای آمریکایی ب... وقتی که دستگیر شدن چی بود؟ خب طبق گفته این سردارینا داشتن گریه می‌کردن خیلی هم شدید اما منتها جدت... وقتی مهربانی پاسداران عزیزا دیدن دیگه ظاهراً رنگریشان بند اومد. میگی چجوری این... یعنی مهربانی کردن؟ یعنی بله. نازشون کردن گفتن نزی نازی تو پوست پیازی گریه ای ای نکنو اینا نه خبه یعنی؟ بچه بازی است مسائل نظامی آقا جون وقتی با رفتاری حرفه یا مطابق شو. با اصولی اسلامی پاسدارانی ما مواجه شدن دیگه فهمیدن که مشکلینی خب به سردار سلامی دیگه چی تعریف کرد سرنی؟ بله لست. سردار تعریف می کرد که اتفاقا در همون نزدیکی ناوی هواپی ما بری امریکایی با شست هواپی ما و پنج هزار نفر نیرو حاضر است. ولی خب همین ناو و هم خیلی دست پاچه شده و هی هواپه ما به پرواز در می آوردن بر فرازی منطقه و یعنی ناو به اون عظمت در برابر چندتا تا غایق ایرانی دست پاچه شده بود ببینید شما انگاه نیروی ایمانی رزمندهای هایی ما را دست کم گرفتی یه خب سرنگ در فیلم ها و گزارش ها دیدیم بانه. که نیروهای آمریکایی با ماکارونی و سیب مورد پذیرایی قرار گرفتن دارسته این ها؟ نه خیر ببینید مکارونی نبود آقای خوراکی مرغ بود سیبش هم سیب فرده لای با قاطع دماوند بود به جان تو مکارونی بود من متخصص ماکارونی هم به در این زمینی با من بحث نکن دیگه من می... من نمیدونم آقا هرچی بود. بود خوب بود میگه اتفاقا یکی از هم همکارایی بنده یه فیلمی هست مصاحبه یکی از این نیروهای آمریکایی فرستاده بود برای من ایوالا. که فارسی هم بلد بودن داشت خیلی تعریف میکرد از پذیرایی تو موبایله بنده هست حالا بعد من بله حسین خب بذیم بله. ما ببینیمش چیا شنوندگانم گوش میکنن بذید واقعا میفهمش اشکال نداره نوا چه شکلی بذید دیگه سرای وزه من آه. به عنوان جانشین صدا و سیما میگم بذارید دیگه بله بش... اجازه بدید کنم این ایول بله کجا بود ها اینا ها اینا هاش, هاش بفرمایید ببینید بگیرش اینجا جلوی میکروفون اینجا ها اینجا بگیر پلیش کو پلیش معل به فرمان اوه اینا هم از خیلیشون بده اینو می... سن همامش مثلا حمامش مثلا تمییز بود قزازش میبینید با این که نشاوه دادن سرنگ؟ همینه اورتقال داشتن دادن خیلی همینست... آقا دیدید خیلی راضی انشون یا. این یعنی خدا بله سرنگ کی دابسمش کی تو باور ما کردی اینو سرنگ معلومه که باور کردم این تصویر نظامی ای؟ آمریکایی صداش هم تا شنیده بابا سرنگ صدای این منده خدا رو گذاشتن روی این تصویر سرباز آمریکایی شوخی این یعنی تو آهای... اینو نمیفهمی سرنگ واقعا این... واقعا من براش متاسفم ببینید هم منداستاورت های نظامو با اینجور جور بهانه های زشت زیر سوال میبرید شما یعنی شما نمیفهمی دارد با بالاجه آمریکایی فارسی حرف میزنه سرنگ این لهجه آمریکایی بود بله ای... سرنگ بگو که داری با من شوخی میکنی یعنی چی بگو چی چی من دنا در... به دوربین مخفی هستم سرنگ اینو به من بگو خ... بگو من طاقتش تو ج... چه جوری پلیسی هستی آخه سرنگ عزیزم من... مگه نوبت حواست به همه چی باشه تو من نمیگیرم چی میگی شما ببین چرا حذیون یعن... میگی آقا تقصیر با... من که کتلआती درنج یکم در اختیار شما قرار میده اینه تلا طبقه بندی شده بودست آقا بنده دیگه اینجا من؟ مونم وای من وای وای سرنگ وای خدای خدا. این دابستوش رو, رو باور کرده بعد شبا که ما میخوابیم این بیداره که ما بلای سرمون نهید <تصفح> اینه بعد تم بگی بخواب سرنگ سن اینجوری سنگین تری بخواده دیگه اوف کلم سود کشیده این باور کرده که امریکایی داره میگه هممه مشتمیس بود وای وای وای وای وای وای I love you.